و آله الطاهرين الطاهرین سیوم الحج الله الأعظم روحي و عروق لامین له الفدا و لعنت الله على عدائهم عدای الله بسم الله الرحمن الرحیم الله ما كل بليک الحج ابن الحسن شرورتک عليه و على في هذه الساعة و كل ساعة وليا و حاضر و و و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارود کتبا ام و تمتعه فیها طویلا شادی قلب نازلین آقای ما و زمان تأجیل لفرجشون و سلامتی و طول عمر رحبر حکیم و فرزانی انقلاب سلوات قلب فرمان اللهم شلالا محمد و عالم محمد ابتدا عرض تبریک داریم خدمت شما بزرگواران و دوستان خاندان اسمت تهارت این اعیاد شریف رو میلاد آقای مام جواد علیه سلام و میلاد مسعود آقا امیر المؤمنین علیه ابن طالب علیه سلام که در پیش داریم و هم مجدد فکر میکنم جلسه قبل هم این رو یادآوری کردم که خب ماه ماه رجب هست و یک ماه فوقلاده برای ارتباط گیری با خدای متعال و شستشوی کامل روحی یک فرصت بسیار مناسب و است. ماه رجب بعدش ماه شعبان و ماه رمزان این سه ماه ماه یک تهارت ظاهر و باطنه اگر خوب حواس جمع کنه و از این فرصت رو استفاده کنه خرج یه سالش رو خرج معنوی یک سالش رو که این خرج معنوی فقط برای معنویات نخواهد بود تو مادیات هم شما میتونید از این خرج از این درامدی که شما کسب میکنید خرج یک سالتون تو مسائل دنیاییتون هم میتونید از این ثروت استفاده کنید ما ثروت های معنوی که از این راه به دست میاد فقط به خاطر برای آخرت نیست این اشتباه نشه یه وقت که ما فکر کنیم که مثلا ماه رجب روزه میگیریم ذکر میگیم بیشتر نماز میخونیم بیشتر اینها ذخیره قبر و قیامتمون فقط میشه نه ما اون ای که تو این کارها تو این برنامه ها میتونیم به دست بیاریم دنیامون رو هم میتونیم باش آباد کنیم چون بنای ما در تفکر صحیح شیعی و اسلامی ساخت دنیا و آخرته ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فل آخرت حسنه و عذاب النار نه فقط دنیای خالی نه فقط آخرت خالی جفتش کم داره ضف داره نقص داره دنیا و آخرت جفتش باید آباد بشه و این تنها راهش اینه که شما ثروت معنویت رو افزایش بدی و تلاش و کوشش مادیت رو که این دوتا را کنار هم میذاری هم دنیا تواد میشه هم آخرته و برای شما که تو سن پایین نسبت به مثل منی هستید این فرصت بسیار مقتنمتره. نه اینکه برای من نیست منم باید کسب به سروت کنم تو این وقت مقتنم نوالا دست بدم ولی برای شما خیلی راحت تر به دست میاد این ثروت برای شما فراوانتره. کسبش راحتتره کیسه شما سالمتره به خاطر همین ثروت بیشتری میشه توش جمع کرد این ماه این سه ماهی که ما داریم ماه رجب و شعبان و رمزان اینجوریه یه ثروتی بعد اون وقت هر کس استفاده نکنه یا ملحسر روز قیامت حسرتش رو خواهد خورد بعضی از ماها ممکن تو همین دنیا یه دفعه حواستون جمع بشه که ای دل غافل عمری گلدشت و ما هیچ ثروتی نداریم الان کم آوردیم الان نمیتونیم استفاده کنیم به خیلی نگاهمون رو باید به دنیا عوض کنیم رفقا خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره رخ میده که ماها برای اینکه بتونیم استفاده کنیم تو اون نقاط حساس ما هم حضور جدی داشته باشیم و سروت، ثروتمند باشیم ثروتمند معنوی چه بتونیم دنیا رو آباد کنیم بتونیم خدمت به امام زمان کنیم والا به قول گفتنی میگن چی بیمایه فطیره شما که پول پول نداشته باشی نمیتونی بری خونه بخریم پول نداشته باشی نمیتونی بری ماشین خوب بخری ثروت معنوی هم نداشته باشی تو نمیتونی خدمت امام زمان بکنی خیلی مهمه نباید از دست بره ممکنه دیگه نباشیم سال آیندهای ماه رجب دیگه ای رو درک نکنیم این یک واقعیت مراسم های ختم ها رو ببینید نمیدونم قبرستون رفقا میرن نمیرن چی جوریه گاهی قات خوبه علاوه بر مزار شهدا که خیلی نورانیت داره گاهی اوقات تو قبرستون آدم بره سنگ قبر رو بخونید سنا رو ببینید چقدر مثل من و شما به دنیا رفتن حالا شهدا رو بمانند خدا روزی میکنه شهادتن ولی بالاخره باید ببینیم دیگه یا کشته بشین در راه خدا یا باید ببینیم راه فراری وجود نداره راه ثومی نیست حالا ما با شهدا فعلا کار نداریم با همین که مردن معمولی مردن بالاخره ما قرار به ممکنه همین امشب بمیریم ممکنه فردا بمیریم ممکن یه سال دیگه بمیریم ممکنه 20 سال دیگه بمیریم. بلعالم ولی ممکن همین امشب از بین من برم چیکار کنم با دست خالی برم ور بگم چی این فرصت ها فرصت های فوق العاده ای برای جمع کردن ثروت واقعا ثروت ریخته فقط یکی میخواد به خودش زحمت بده جمع کنه همین همین اندازه همین یعنی اینقدر زحمت فقط یکی دلار چه ورداری این پولا رو این ثروت های معنوی رو انقدر زحمت لازم داره ما توی ملاسبت پیشر اون تولد آقا امیرالمؤمنین موونینی یک انسان ثروتمند معنوی فوق العاد ثروتمند قله هست بعد برای جمع کردن این ثروت از همه منو شما بوده یه ضررش هم استفاده نمیکرد برای خودش این ثروتشو سرمایه گذاری میکرده سروتهایی که به دست می آورده باز زوری یه جا سرمایه گذاری میکرده سود بیشتری ببره چاه میزد وقف مردم میکرد تا الان چاه که امیر وقف کرده اونایش که هست همچنان داره حساب میگن حساب جاری امیرالمؤمنین المومنین همجوری داره پول میره ثروت داره واریز میشه براش آدم زیرک اینجوریه اینایی که میرن کلا برداری میکنن سه هزار و نه هزار میلیارد این حرفا اینا آدم های زرنگی نیستن فکر کردن زرنگی کردن حالا چار سبایی صفا کرده آقا مثلا آقای نمیدونم نه هزار میلیاردی این میگه مثلا آقا من ساعتم پونزه میلیون تا من پولش بوده برای خودم هواپیما پیما داشتم آخرش چی شد <تصفح> چند سال صفا کرد با این سروتش تو زردونه هیچ کاریش هم نکنن سروتشو ازش میگیرن دیگه هر چی جمع کرده بود ازش میگیرن میگن تو اینقدر بدهکار بودی باید پس بدی یا اون یکی یا اون یکی یا اون یکی ولی امیرالمومنین المومنین نبود آدم زرنگی بود نمیرفت پولشو بده پونزه همیلیون تا من یه ساعت مثلا طلا دستش بندازه میرفت اینو چکار میکرد خرج مردم میکرد خرج یتیمان میکرد باغ درست میکرد وقف میکرد آدم زرنگ ولی حالا امیرالمومنین تو قله است اون بالا بالا بالاست خیلی سطحش بالاست من و شما رفقا راجب امیر المومنین یک در میلیونم نمیدونیم یک در میلیون دارم خیلی سطح پایین میگم رقم آوردم پایین مشتری دا. ولی ما هیچی راجب می درمونی نمی دونیم هیچی هیچی هیچی اینقدر ایشون سطحش بالاست اینقدر اون بالا بالا هاست ولی دستشو آورده پایین تو اون اوج دستشو آورده پایین میگه حالا دستشو تو دستم هم بید. با هم بریم دیگه میگه من اومدم پایین شما رو ببرم فقط زحمت اینه که دستتو ببری بالا دستتو برسونه به دست او دستتو دست بگیره تو کار تمامه من امثال من این تمبلی رو میکنیم دستمونه درازه میکنیم ولی خیلی اتفاقات میفته امروز یه توی جلسه یه خود رفتم توی پرانتزی اما توی خود پرانتزش ممکنه گرگوشاد باشه توی جلسه آسیدی داستان من نشدی بودم راسته به این شکل داستان این جوانمرد قصاب هست توی شهر ری جوان جوانمرد قصاب داستان اونو تعریف کرد این یه جوون ایرانی بود اسمش امیرالمومنین شنید گفت میرم کوفه ببینم این آقا کیه چه جوریه سو این حرفا علاقمند شدو به امیرالمومنین رسید کوفه حالا طبق نقلی آ سید من دارم برای شما میگه امیرالمومنین نبود تو کوفه یه چند روزی آقا حالا بیرون به خاطر جنگ بوده چی بود آقا تو شهر نبوده این خب میگه خب حالا که اومدیم اینجا بعد منتظر باشیم تا امیرالمومنین بیاد خب مشغولی به یه کاری پیشون بالاخره خودمون در بیاریم. رف این با گفت من قصابم رفت توی مغازه قصابی شروع کرد کار کردن یعنی حالا مغازه به اون شکل نبوده که شروع کرد کار قصابی خودش رو گوشت فروختن میگن یه روزی یه کنیزی اومد کنیز خانم مثلا صاحبش گفت بروی خوره گوشت بخر اومد گوشت خرید و صاحبش گفت گوشت خوب بگیری ها. گوشت خوب نگیری مثلا گوشت بر... آو خرید آورد خونه طرف باو نه گرفت گفت چیه خریدی ببر پسش بده عوضش کن گوشت برداشت آورد داد به قصاب گفتش که این صاحب من میگه این خوب نیست یه گوشت بهتر بده قبول کرد گفت باشه بیا اینو گرفت گوشت دیگه بهشت داد رفتونه دوباره طرف گیر داد گفت این چیه خریدی ببر پسش بده آورد پسش بده گفت پول چی باشه دیگه من دوبار بار گوشت میدم گوشت خوبم دادم دیگه پس نمیگیرم به کنیزه گفت آخه اینجوری الان برم خونه صاحبم اینجوری اصلا دوام میکنه چه میکنه خب به من چه این حالا منم دیگه گوشت خورد میکنم میدم به تو نمیکنه عوض نمیکنه میگن این کنیز اومد گوشه تو مسیر یه جا نشست گریه کردن بیچاره خب میرف خونه صاحبش کتک و چه میدونم ازیت آزار بود دیگه تو این رسید اومد دید که این کنیز داره گریه میکنه حاکمه ها امیرالمومنین تو زمان حکومتش حالا اینجوری تعریف میکنه. گفتش که چی شده چرا گریه می‌کنی گفت داستان اینجوریه گفت بیا بریم من حالا بریم منم بیابار بار بهش بگم باشه قصابه گوشت رو تعویض کنه حالا من علی هم مثلا یه آبرویی بذارم همراه با این چندی الان جلو قصابی حالا طرف نمیشناسه امیرالمومنی که غریبه از ایران تازه اومده هنوز علی رو ن شنیده دوستش هم داره امیرالمومنیو ولی ندیده هنوز هنوز ندیده نمیشناسه امیرالمؤمنین اومد گفتش که آقا این میشه این گوشت اینو این کنیز رو عوضش کنی اینجوری صاحبش گفت نه آقا دوبار برش عوض کردم دیگه عوض نمیکنم امیرالمؤمنین روی خود اصرار کرد این جوون دست گذاشت تو سینه امیرالمؤمنین گفت آقا نمیدم دیگه عوض نمیکنم امیرالمؤمنین گفت خب باش بیا بریم بیا بریم در خونه به کنیز گفت خب عوضه نمکنی دیگه بیا بریم حالا من پیش صاحب مثلا وساتت کنم دعوت نکنه اومدن در خونه و صاحب این کنیز دید که کنیز با وساطت و شفاعت علی اومده گفت آقا فدای سر شما اصلا خودشم آزاد کردم به عشق شما آقا این طرف داستان اون طرف این اطرافیان و تو اون کسایی که اون دوره بر بودن رفتم پیش این جوونه مرد سابی چیکار کردی؟ چرا اینجوری کردی؟ چرا آقا رو رد کردی؟ چرا... گفت نه آقا هر چی میخواد باشه باشه من خوشم نمیادم आवाز نمیخوام بکنم گفتم میدونین کی بود گفت نه چرا نمیم چرا چی میخواد باشه گفتن این علی بود گفتش که چی میگی گفت فوری امیرالمومنین بود آقا این انقدر به خودش علی رو دوست داشت میگم ورداش ساتور رو این دستی که زده او تو سینا میرامونید یه ضرب قاطعش کرد ساتور قصمی گفت به تنبیه این که این دست دست رد تو سینه علی زنه بعد میگن همینجوری دست بریدهش رو ورداشت و بدو بدو رفت خودش رسون در خونه امیرالمومنین افتاد به دست پای علی یا علی ببخشید غلط کردم نشناختم چه بود. میگن آقا بغلش کرد و بلندش کرد و دستش رو گذاشت رو دستش با آب دهان مبارک اینجوری دور این دست کشید میگن طوری دست خوب شد که حتی قرمزی جای زربم پیدا نبود دست امیرانمانین خیلی این یکی از امام میگم از راجب امام چیزی نمیدونیم ما الان این مصلا این معجزه دست قد شده در سر جاش درست شد مگه میشه آره میشه حالی این یکی هم میگن مثلا لطیفه است یا تو تاریخ ملا شک از منه ولی بعید نیست درست باشه میگن زمان خود امیرانمانین از این قلوف کننده ها بودن امروزیا میگیم علی اللهی خب بیگو هی بیگو مثلا علی خداست سوالا گفت نگو کفر این هر آقا چند بار گفت خب کفر ثابت شد عمیر گردنشو زد گردنشو زد و بعد نمیدم مادرش ما چی کرد نالزالی کرد چیکار کرد عمیر گفت خب باشد سرشو سیناش سینش بلاخره دعا کرد این زنده شد گفت علی الان اگه یه ذره شک داشتم الان دیگه شکم بردارم شد تو خود خدایی میاد درستش که حالا کی درستش کنه؟ یه یه داستان دیگه اینم قشنگه رفقه ما راجع و دوباره تکرار میکنم هیچی نمیدونیم یه سری حرفها هست آدم جرعت نمیکنه جایی بگه یه سری حرفها هست من جرعت نمیکنم بقونمش از ترس کفر ظرفیت کمه دیگه انتظر یه نه یه دفعه میخوای چقدر بگیم کمه یه اقیانوس کمه تمام آب‌های آلم بگیم کمه میخوایم برزیم توی فنجون، توی توی نلبکی کچولو خب نابود میشه چیزی ازش نیمونه حالا منه نسبت به معرفت هم میگن یه روز خب جناب سلمان فارسی رزان خدا او باد جزء اب سنباله هاست مؤمرین میگن طولانی سن طولانی داشت 250 ها 300 سال عمرش بوده بعد میگن یه روز نشسته بود امیرالمونی دورانه مثلا جوانی امیرالمونی زمان پیغمبر حالا این پیره مرده 200-300 ساله امیرالمونی مثلا 17 ساله نشسته بودن خورما میخوردن طبق نقلی که شده آقا خرما میخورد حسای خورما رو مثلا مینده تمت سلمان شوخی میخواست باش بکنه اون یه آدم ساله این علی و سعید دا سالیجاس می خورد اینجا پرت میکرد روی مثلا سلمان باش شوخی میکرد یه دفه مثلا سلمان گفتش که گفت علی جان آخر حساب ریش بارم بکن اذیت نکن از گفتش یه میگه امیرالمؤمنین برگشت گفتش که چی گفت شما سنت از من بیشتره خب دیگه هر بریم میگه همه می‌فهمند من معلوم هستنه بیشتره یه دفعه میگن گفتش که آقا امیر ارمانی فرمود که سلمان یادت میاد بچه که بودی مثلا دین آبا اجداد زرتوشتی بود تو قبول نکردی ده دوازه ساله بودی میخواستن ب... بابا تینا میخواستن بکشنت به خاطر اینکه دین زرتوشت رو قبول نکردی از خون فرار کردی یادته آره یادمه گفت یادت رفتی تو بیابونه یک بیابون های اطراف شیراز سحراهای اطراف شیراز بچه اونجا دیگه گفت یاده رفتی اونجا بعد تو بیابون خوابت برد گفت آره یادمه گفت یاده بیدار شدی دیدی که مثلا چیز شده نقشه اسرائیل و این حرفا جنوب شدی گفت آره یادمه گفت بعد یاده رفتی یه چشمهی پیدا کردی رفتی خودتو بشوری مثلا خود تمیز کنی یه دفعه میخواستی از آب بیای بیرون دیدی یه شیر داره میاد سمت ترسیدی دست رو به آسمون بلند کردی گفته ای حقیقتی که نمیدونم اسمت چیه این موحد بود اما نمیدونست نمیتونست آتش برسی و چه و دوگان برسی رو به بزیره دعا کردی گفته ای حقیقتی که نمیدونم اسمت چیه اما قبول باورت دارم که هستی منو نجات بده دست این شیر سرمان گفت آره یادمه و یه دفعه دیدی یه سواری از سواری اومد جلو شیرو با شمشیر زد شیره رو کشت تو رو نجات داد گفت اینم یادمه گف بعد تو چیکار کردی یه خورده از اون گلهای صحرا رو به عنوان تشکر دسته گلی درست کردی هدی کردی به اون آقا آره میگه امیرالمؤمنین دست کرد تو آسینش آسینای عربی چیزی دیگه گلگشاده دست کرد تو آسینش دستگوله در روی گفت سلمان این دستگوله نبود میگه سلمان یه رفت باشد گفت این گل همونه یه گل توجه کرد دقت کرد گفت تو همون آقایی گفت سلمان بعد میگن سلمان بلند شد از شدت حیرت عقب اقب رفت از اتاق رفت بیرون رفت خدمت رسول الله گفت <تص> یا رسول الله امروز یه حرفی زد که از یه چیزی خبر داد که من اون رو به شما هم تا حالا بود. گفت چی شده؟ گفت اینجوری اینجوری اینجوری گفتش پیغمبر گفت این چیزی نیست که حالا من یه چیزی بگم دیگه حالا یه چیزی پیغمبر میگه که یه خورده دیگه ساعتش چون امیر این اینجوری به شما بگم دومین دو مخلوق عالمه. اول پیغمبر بعد علی علیه السلام چندین هزار سال قبل از خلقت آدم نور اینها فریده شد م... دی... نرونم شاید چندید میگن که معلم ملائک معلم ملائک بود کجا اونجایی که حالا ظاهرا جبلهی توی داستانی به امیر الم... به خدمت پیغمبر میگه میگه که آره ما علی رو میشنستیم ما هرچی داریم اصلاد ما زقا قصدی گردن ما داره اون تعلیمی که ابتدا یاد داد به ما چجوری تصمیه خدا بگیم علی به ما یاد داد حبل از خلقت آدم خیلی حرفو هست یه حدیثی هست نمیشه گفت یعنی با خیلی زرفو برد بالا چون اونجا امیر المومنی خود آقا میفرماید میگه اگه کسی شک کنه تو این چیزایی که من میگم کافره چه آدم نخونه بهتره. تو میخونی یه وقت شک بکنی بیا دارستش حدیث معتبر سنت قوی میگن یه روز س... سلمان و ابوذر، زر خدا بر این مردان الهی باد نشستو بودن با هم صحبت میکردن این معرفت به نورانیت امیر المومنین چی چیه سردر نمیگریم سلمان ابوذر با گفتن پاچو بریم از خود علی بپرسیم بریم خودمون از امیر بپرسیم بعد میگه اومدن و دیره خونه نیست هم دم درگه خورده نشستن آقا اومد سلام و علیکو خب کاری داشتی؟ بله یا علی ما میخوایم این معرفت به نورانیت شما چیه؟ وای وای بایی بای بایی بای بای. امیرمانی دوتارو میبره کنار قبل اعتمادن دیگه ظرفیتشون زیاده شروع میکنی یه حرفایی زدن حرفایی زدن پس. میمونه بعد امیر دو جاش فکر کنم دو جاست تو این حدیث مفصل هم هست کسی شک کنه تو این چیزهایی که من میگم کافره خیلی ما خیلی چیزها نمیدونیم راجبه امیر المومنی اصلا زرفیت خود پیغمبر پیغمبر میفرماید که علی جان اگر نمیترسیدم که مردم راجبه تو همون چیزی که راجب فرزند مریم گفتن که گفتن پسر خدا سوچه و چه اوچه نوزه اگه نمی ترسیدم که مردم یه همچی چیزایی راجعه تو بگن یه حرفایی می زدم یه تو رو یه طوری معرفی می کردم که از هر جا که رد می شدیم مردم خاک که چپشتو تبرکی بردارن فقط می مردم کافر بشن نمی جن. پیغمبر خودو نگران مردم هم می اینجا صرفیت ندارن یه قدر بفرمیم نداریم ماها یه ذره به ما بگن بیریم علی اللہی میشیم نوزوالله خود علی راضی نیست به این حرفا به هیچ عنوان راضی نیست چرا کفره چون امیر مخلوق خداست بنده خداست تازه نسبت به پیغمبر خود آقا كه انا که من عبیده محمد صلی الله علیه وسلم من که فارسی فارسیش میگم من نوکری از نوکرهای پیغمبرم برمیم مقام پیغمبر کجاست اول ما الله رسول الله که حالا دیگه ترجمه فارسی هم نکنیم راجع امیر ما چی میدونیم با همه این حرفا ببینید مثال های مختلف داستان های مختلف من رو شما شدیدیم همین یکیش که من عرض کردم میاد بیبینه این که این کنیز نشسته اینجا داره گریه میکنه آقا دلش به رحم میاد میشینه حاکم اسلامیه حاکم دنیا بزرگ اسلامی کشور بزرگ اسلامی توان تاریخ که امیر حاکم شده. ایران و شمال آفریقا و خیلی وسعت داره کشور اسلامی که امیرالمؤمنین مومنین گرفت خیلی بزرگه بعد آقا میاد میشینه کنار این کنیز کنیز یعنی که چیزو ب... یه ب... قسمتی از جامعه تو اون دوران که ارزش پایین تری داشتن هیچ اختیاری نسبت به خودشون نداشتن نوکر بودن خب نوکر زرخ میفروختنشون پول میدادن میخریدن میفروختن بعد آقا میشیند به درد دل این دختر گوش میکنه بعد میبینی خب تفرک مشکل داره بلندش میکنه بریم شفاعت کنیم میخوایی خب قبول نکرد بریم شد صوابش یعنی علی توی اون اوج اومده پایین پایین رو خاک شده ابو تراب انقدر اومده پایین که دست منو شما رو بگیره که دست موها رو بگیره چقدر داستان شدیدیم راجعه یتیم نوازی چقدر مؤمنین چقدر تو چه سرتی زندگی میکرد حالا همه اینها شما نگاه کنید این آقای این تیپی با این عظمت معلم ملائک کسی که خدا توی عرش وقتی میخواد با پیغمبرش حرف بزنه با صدای علی با او حرف زد هی بخوایم بگیم اصلا باید بشنیم فقط همین حرفا بزنیم تمامی هم نداره آخه یکی دوتا نیست یکی دو نیست قربون جمال دل رو باشم یا خب. حالا اصافی که تو روایات هست خیلی چهره زیبا و جذابی هم داشته حالا درست ما فقط اکتفا نمی کنیم ولی خب اینم یه چیزیه دیگه انقد این آقا جذاب و دل رو باز میگه خدا توی هر آسمونی یه دونه ملک رو شبیه احمیران میکنی قرار داده ملائک این رو راحت دیگه ببیننش دیگه دورش به به عشق امیر این آقا با این همه ثروت بعد میاد این ثروتشو خرج مردم میکنه فکر حالا خرج کردنش رو چی؟ فکر اینه که من خدایا من از قیامت نگرانم بابا علی تو دیگه چنین حرف رو میزنی؟ من نارا من میترسم از قیامت خدایا من از جهنم میترسم دعای کومیل رو بخونید علی با اون ثروتش با اون ثروت معنویش خدایا من از جهنم میترسم سوره ده رو بخونید انسان از آیه 6 تا 22 فکر میکنم تا این آیات نازل شده اختصاصا برای امیرالمومنین خانواده عزیز و نازنین و نورانیش فاطمه زهراب و حسنین سلام الله علیه مجمعین سر اون نظریشون بعد وقتی اینها افتاریاشون رو همه رو بخشیدن یک سرات خط بفرمان خب گوش نمونده بعد چی میگن فرما... می به این یتیم و مسکین و یتیم و اسیر میگن ما این رو در به خاطر خدا بخشیدیم ما از اون روزی که ابوسن قمتری راست میترسیم نان نخاف و یومن عبوسن قمتری را خب اینا الگو دیگه اینا تو اوج نشسته هی داره چراغ میزنه میگه این طرفی باید بیاید این طرفی باید بیاید از هر طرف دیگه برید گمراه میشید این طرفی باید بیایید مثلا فانوس دریایی حالا ماها ندیم ولی تو این کارتون‌ها و فیلم‌ها دیدید دیگه فانوس دریایی کاری چی بوده و چی هست این که تو دریا این چشتی هایی که دارن رد میشن حالا قدیم بیشتر الان با این چیزای ماهواره‌ای و اینها مثلا شاید کارش کمتر بشه نمیدونم حالا دریا نوردی نکردیم ولی این از اون چراغ قوی که داشت تو دریا مینده خشکی رو نشونش میداد میگو خشکی این طرفه جای دیگه نری گم نکنی خشکی اینجاست ساحل نجات اینجاست اهلویت ما چی هست؟ مسباح الهدا چراغ هدایتن نشستتون قلده هی داره چراغ میزنه میگه ما این طرفی ما راه اینجاست دو راه درست اینجاست بیا بالا بیا این طرفی بیا خب ما میخوایم شبیه اونا بشیم میخوایم به ادعا به ادعای شیعگیمون عمل کنیم و واقعا شیعه بشیم باید به اون هم ترکت کنیم بعد از این فرصت های کسب درامت استفاده کنیم بعد پولدار بشیم کبوتر با کبوتر باز با باز پولدار معنوی دوباره هی تکرار میکنم این پولو من سری میکنم به کار نبرم اشتباه نشه با پول کسیف دنیایی که اونم آدم زرنگ از اونم درست استفاده میکنه که امیرالمومنین زرنگ بود از اونم درست استفاده میکرد درس استفاده هران یک مثال بزنم از پیغمبر یاد گرفته دیگه شاگرد پیغمبره پیغمبر میگن یه روز قرمونی کردن نذر کردن گوسفانی رو کشتن و گفتن تقسیم کنی بین فقرا و اینها تقسیم کنیم این کسانی که این کارو انجام دادن همه گوشتارو تقسیم کردن یه مقدار گوشت رو آوردن خیلیمت پیغمبر گفتن یا رسول الله همه رو تقسیم کردیم فقط هم یه ذرهش مونده پیغمبر گفت تا فقط برعکس همهش برای ما موند این یه ذرهش که میخوریم ادبعی میره زخیره میشه آدم زرنگ پولش هم درست مصرف میکنه خودش نمیخوره که تموم بشه حالا خودش هم بخوره نه خب دیگه همش خودش نمیخوره که تموم بشه زخیره میکنه میده خب چی میخواستیم بگیم میخواستیم بگیم که ایام ایام طلایی فرصت فرصت طلایی است برای پولدار شدن برای ثروتمند شدن معنوی یکی از اتفاقات فوق العاده خوب فوق العاده خوب که به لطف الهی به برکت انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی رونق گرفته زنده شده اعتکافه حالا رست شده تو ایران ما از تولد امیرالمؤمنین تا وفات خانم زینب کبراس هم علیه ها تو این سه روز گرفته میشه که البته منحصر تو این سه روز نیست بهترین وقتش ده روز ماه ده روز آخر ماه بهترین وقتش که پیغمبر مرتب هر سال ایم اعتقاف رو داشتن،, مرتب داشتن ولی غیر از اون تو همه ایام سال میشه اتکاف کرد حداقلش دقلش سه روزه دوی بیشتر جان هر چقدر تونستن یک فرصت بین نزیر فوق العاده بی‌نظیر اهل بیت ما قفلت می‌کردند از خود رسول الله داریم که آقا جمع می‌کردند رختخوابشونو وسایلشون جمع می‌کردن می‌رفتن تو مسجد الحرام یا بالاخره توی مدینه تو مسجد النبی معتکف می‌شدن امام حسن داریم بعد اهل بیت دیگه حالا اونهایی که نقد شده چرا فرصت فرصت مختنم نیست سه روز نمیدونم رفقا رو چند نفر تجربه اعتکاف دارن کسی رفته از این جمع اعتقاف یا نه هرکی رفته میدونه چقدر شیرینه سه روز راحت راحت از چی؟ از این ارتباطات شلوق و پلوک دنیایی از این رفت آمد ها از این بگو بشنو های بی, بی خودی از این حرف های بی فایده از این رابط های بی فایده بلکه پرزرر بلکه پر میره توی فضای خونه خدا جای امن آرام اصلا یه دنیای دیگه است. باور بفرمان. هر هرکی تجربه نداره بره تجربه کنه یه دنیای دیگه است. شاید فیلماش دیده باشید بعضی از بچه ها روز سوم سه روزم هم هست روز سوم که میخوان خدافزی کنن جریه میکنن همدیگه دیگر وقل میکنن اصلا عجیبه و چه خبر اون تو و چه اتفاقی افتاده که این همه با هم اونس گرفتن حالا گریه میکنن برای خدافزی برای سه روز انقدر دلها نورانی میشه اینقدر دلها صاف و پاک میشه جذب هم میشن به شدت بعد میخوان جدا بشن گریهشون درمیاد. در میاد میخوان خونه خدا جدا شن عشقشون جاری میشه بعد برای سال دیگه لحظه شماری میکنه آدم معتاد میکنه اینجوری بهتون میگم. اعتقاف آدم معتاد میکنه ما توی دنیا خیلی گرفتاریم رفقا واقعا گرفتاریم بعضی گرفتاریاش طبیعیه بعضی گرفتاریش هم خودمون درست کردیم لذا این سه روز اعتکاف اگه آدم هنرمندانه ازش استفاده کنه یه خورده حواظشو یه خورده یه خورده حواظشو بیشتر جمع کنه خرج یه سالش در میاد به جای یه ماه سه ماه که گفتم با یه کلی میکنه کلی پول جمع میکنه یک دوره خلوت یک دوره ذکر یک دوره عبادت یک دوره روزه یک دوره نماز شب یک دوره بیداری سهر سه روز سه روز معمولا حالا چون تو این ایامی که فعلا هستیم تو تابستون و بهار هستیم شب ها کوتاهه حالا, حالا تجربه که داشت. معمولا شب ها شب کوتاه افتاری خورده تا سهر هم فاصله اینی ای تازه بعد افتار جون گرفتن تو طول روز طولانی تو این ایام روزی گرفتن روز رو خسته بیحال افتاری میخورن تازه شنگول میشن خب نمیخوابن تا صبح معمولا نمیخوابن من این دیگه بعضی ها لسه تو همون بیداری سهر کار خودشو میکنه <تصفح> همون بیداری سهر سه شب شب زنده داری حالا بعد بعد نما صبح میخواهند تا دریازم مثلا بچه هم میخواهند فوق العاده است نظیره هیچ جای دیگه نمونهش پیدا نمیشه هر میخواد خودسازی کنید اعتقاف را دست بدید یه فرصت بزرگ را دست دید یه فرصت بی رو را چشیدنیه دیگه حالا من اگه به شما شیرینه اونایی که نچشیدن من چجوری بگم شیرینی رو شما توصیف کنم چه که تا حالا شیرینی نخورده مالی بابایش بگیم شیرینه متوجه نمیشه باید بریم شیرینی بذار بذاری دهنش به جان که هر کنی باید شیرینی بذاری بگی بخور خورد مزه کرد میگی به این میگن شیرینی مزد چشیدی؟ خوب بود آره خوب بود یکی دیگه هم بده اعتقاف لذت معنوی هم همین جوریه. بلکه فراتر چون لذت معنوی دیگه شیرونی نیست که من وردنم یه دونه شما دهنت بخورید لذت معنوی رو خواهی برد بری بچشیش اون وقته که دیگه قوقا میشه خیلی اتفاقای بزرگی میتونه بیفته تو اون سه روز اگه آدم عرض کردم یه مقدار یه مقدار حواسشو رو جمع بکنه یه خورده موبایل بازی انجام نده این بلای خانمانسوزی که افتاده به جونه همه ما. موبایل بازیو و و واتساپ و وایبر و این رو تعطیل کنه. جایی که ممکنه. حالا وقت مثلا تماس باشه مادری، پدری، خواهری، برادری، همسری، کسی با. ولی دیگه ارتباطات زیادی، بیخودی خودی، دل مشغولی‌ها بره کنار. ببینید چه اتفاقی میفته. حالا این نکته بگم ما توی اسلام عضلت و روحانیت و این حرفا نداریم. مثل مثلا مسیحیا بریم تو کلیسا ازدواج نکنیم زندگی نداشته باشیم به خودمون شکنجه بدیم که البته الانی ها که دیگه اون تیپی هم نیستن عداعتوارش رو فقط در میارن ما نداریم اسلام نداریم حرف رو ولی این نسخه های موقتی داره اون نسخه های موقتی یکیش همین اعتکافه سه روز کنالگیری سه روز ده روز کنالگیری از مردم حالا چرا؟ رفقای من این همین ارتباط با مردم انواع و اقسام مردم ها ما نمیدونیم که گناهکار آدم خوب آدم بد آدم رز آدم سطح بالا سطح پایین قاطی پاتی دیگه میریم مدرسه میاییم میریم فروشگاه میریم پارک میریم استق میریم اینور میریم اونور مهمونی میریم همه جور آدم برخورد میکنیم بعد ما چون توجه نداریم که روح ما اصل ما ما اون انقدر لطیفه انقدر حساسه انقدر حساسه که با کوچکترین برخوردی اثر میگیره یعنی به شما کنم که با کوچکترین اثری بعد حالت دیدید دیگه میگن مثلا چی میفرستن به هم دیگه موج مثبت و منفی میگن طرف موج مثبت داره میفرسته طرف موج منفی میفرسته اینا تو حد زیادیش واقعی است بد این گناه ها یا خوبی ها فرقی نمی کنه. دیدید اسلام خیلی رو هم نشین تاکید داره که ببینید با کی میشینید پا میشینید خیلی مهمه چرا چون شما وقتی در کنار یک انسان نورانی قرار گرفتید نور او بیشتر از شما بود اون نور به شما میتابه شما رو روشن میکنه ولی اگه برعکس او تاریک بود تاریکی زیاد بود اون تاریکی زیادم نه یه مقدار تاریکیم داشته باشه اون آلودگیش به شما هم سرایت میکنه مثل یه پیرن سفید میمونه شما پیرن سفید تمیز شسته شده تنت کنی بری تو کجا تو مکانیکی تو تعویض روغنی کاپوت ماشین بزنی بالا بخای چیکار کنی روغن تو عوض کنی بخای مکانیکی کنی از این ساسترها ولی یک گرد کوچولو راحت میشینه روی سیاهش میکنه. اثرش رو میذاره. مثل پیرام مشکی نیست معلوم نشه. پیرن سفید کوچیک این اثری لکه بیفته خالصا نشون میده. بعدم نشون میده. خیلی تابلو میشه. چرا مستحب توی اسلام خیلی تاکید شده پیرن روشن و سفید بپوشید؟ چرا چون نظافتش زودتر خودشه آن و رو نشون میده. شما مجموعشی شید زود, زود لباس همیشه تمیز باشی. خیلی مهمه روح انسان از این حساس تره زود اثر میگیره یه خاطره بگم و تمام یه ثبت میکنه در خدمت یکی از عرف های بزرگ بودن توی نجف تابستون های عراق مخصوصا نجف و اونجا ها میگن خیلی داغه ظهرها که دیگه آتیش میباره میگه خدمت این آرف بزرگ بودم میگه از مسجد اومدیم یا از حرم امیران خارج شدیم. میگه من کنار این آقا راه میرفتم احساس خونکی میکردم میگفت از این آقا یه خونکی میزد بیرون احساس خونکی ایجاد میشد میگفت منم گرما رو احساس نمیکردم خنک بودم از سال کرامات این آقا بوده از قابلیت های روح این آقا بوده که فعال شده بوده میگه خب همینجوری تو خونکی با هم همراه این آقا اومدیم اومدیم تو مسیر خب ظهر تابستان های نجف خلوت همه جا میگه تو مسیر یه آقای اومد از این حضرت آقا سوال بپرسه میگه اومد نزدیک باشتارن آدم عادی سؤالشو پرسید خیلی کتا سؤالشو پرسید آقا جواب شد میگه رفت میگه تو این حین من احساس کردم که گرمم شد گرمم شد گرما به من اثر کرد گفتم دیدم که آقا خونکی رفت روح شما داشت به ما کوله سر خود داشت به ما خونکی میداد بین رفت میگه که اون آقا که رفت و اینها من پرسیدم آقا چی شد؟ این خونکیی که بود این محافظت از گرمایی که بود کجا رفت؟ گفت این آقای این بنده خدایی که اومد با ما صحبت کرد بالاخره گناه های ریز و دروش تو وجودش وجود داشت بود اهل گناه بود این روح او آلودگی روح او باعث شد که روح من متاثر بشه تأثیر منفی گرفت و این خاصیت این بغاله بغاله خیلی امروزیش بگیم این فعال شده ای ما از کار افتاد از اولیای خدا و ما بیتوجهیم به این لذا با هر کسی میشینیم پا میشیم. خیالمونم نیست من بگیم چرا نماصب خواب خوب بابا خرابش کردی میگه من چقدر زحمت کشیده بودم تازه نماصبمو حالا تو وقتش میخوندم حالا اول وقت هم نشده. خیلی زحمت کشیدم ها خیلی زحمت کشیدم ولی نمیدونم چرا چند روزی صبحم داره قضا میشه چرا به موقع میخوابم غذا قضا میشه خب بابا با هر کسی نباید بشینی پاشی و این فرصت رو خیلی والله نمی‌دونم فرصتش مونده باشه برای ثبت نامش نه ولی توصیه است حالا بالاخره است که خیلی ها انجام دادن فایده بردن سود بردن ان بتونید سووال کنید اعتکاف یک فرصت مناسبه سه روز روزه داره و بقیه‌اش هم دیگه عبادت های شخصی است بقیه روزام شخصیه آقا ولی بقیه‌اش هم دیگه با خود آدم هست. خدا انشالله روزی همه ما بکنه با معرفت با بیشترین بهره به حد ها اکتفا نکنید تو مسائل معنوی تو سودهای های معنوی به حداقل ها هیچ وقت اکتفا نکنید بیشتر ها رو بخواید آدمایی که کم میخوان ضرر میکنند سود نمیکنند باید بیش زیاد خواست تو مسائل معنوی به فکر برداشتای فراوان باشید انشالله تو این شب و روز هم انشالله بالاخره ذکر گفته خواهد شد و هر جای دیگه بودید که عبادت عبادت. اون وسعت مسلط دعا کنید. دعا کنید. حالا هر دعایی که دوست دارید دیگه اولش فکر میکنم بد نباشه اینجوری. بد کنی حتما خوبه. فرج آقا رو بخواید. دیگه بس. دیگه بس این همه آدم که بمیرن تو دنیا. دیگه بس این همه ظلم و جنایت بشه. دیگه بس این همه بی‌عدالتی. این همه ظلم. بعد دعا کرد توی مجلس بعد دعا کرد احتکاف رفتید حتماً همه رو دعا کنید ما رو همه به اسم لازم نیست حالا به اسمم بگید بگید همه بچه‌های ها همه بچه محله همه ها همه فامیل همه هم های خودمون مردهای مسلمون ها مسلمونا مرده‌های شیعیان همه رو شریك کنید هممتتونم بالا بگیرید چیزی سطح بالا بگیرید بندرم از دعا فراموش نکنید خدا ان که به حق امبیر به حق جواد العیمه علیه السلام که دیگه فرصت نشد ذکری از این امام نازنین ما بشه آقابت همین ما ختم خیر باشه به بلکت صلوات و محمد و محمد